بسم الله الرحمن الرحیم امروز با شما درس را میخانیم که در کتاب نیست لطفا یاداشت میگیرین خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلات و سلام و علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. امروز در افغانستان یک موضوع بسیار مهمی که زیاد مطرح میشه اگرچه چی موضوع را دین مقدس اسلام تقریبا 14 قرن پیش حل کرده این موضوع موضوع حقوق است احیانا مشکل بعضی از کسا در این پیدا میشه که یکی از موضوعات مهمی که زیاد مطرح میشه موضوع حقوق است که غالبا حقوق مرد، حقوق زن، حقوق طفل زیادتر در شرایط مطرح میشه و بعضی کسا این به شکل درستش نمی فهمه خاطر دشمن اسلام از این طریق گوشت میکنه کنه را از زینهایشانه خراب بسازن در دین مقدس اسلام تقریبا 14 قرن قبل این مشکل حقوق کاملا حل شده و چون حل این مشکلات توسط ذات خداوند مطال جل جلوه جل صورت گرفته از این خاطر ما میبینیم که کاملا قضیه حل است و لازم است این رو و در باری از این معلومات داشته باشیم تا بتانیم که حقوق با تکالیف خلط نکنیم چون کسانی که قانون رو نمی بین حقوق و تکالیف اینا یک نوه خلط میرن ما حق چی را میگیم و تکلیف چی را میگیم و امتیاز چی را میگیم سه استلاح هست حق اونمو اونمو چیزیست که خداوند متعال جل جلالهو بر یک انسان او را میته و انسان منعیسیست که انسان است از او حقها مستفید میشه ولی تکالیف چیزیست که او حق نیست بلکه یک مسئولیت است یک تکلیف است که او هم از طرف خداوند متعال جل جلاله تعیین میشه و امتیازات چیزایی است که اضافه از حق و تکلیف بر بعضی کسا امتیازات داده میشه که ما شما کدام عزیز علای مورد مطالعه کار میگیم خب حقوقا تقسیم میکنیم به عام و خاص حقوق عام کدام حقوق است حقوق عام عبارت از او حقوقی است که خداوند متعال جل, جل و هو بر تمام انسان ها زن باشه یا مرد باشه، پسر باشه یا دختر باشه، ای حق داده. ایچی از مثلا حق انسانیت. هرکس حق انسانی خود دارد. منعیس یک انسان وقتی که خداوند متعال جل جلو جل گفته که ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم کرامت دادیم. بناً در این کرامت زن و مرد به شکل عمومی کلگی شامل هستند هیچ کس از این جدا نیست حقوق اخلاقی بناً وقتی انسان منحص یک انسان هر کس حق داره که باید با امراز و راهش اخلاقی صورت بگیره قوهین نشد، تحقیر نشد و منعید یک انسان از او احترام شود. و خداوند متعال جلجاله برای کلگی ایره به شکل مساوی بدون در نظر داشت مذکر و معنی است برای کلگی دادن حقوق معنوی حقوق معنوی که عبارت از حقوق ایمانی می باشه که به معنویت انسان تعلق داره این حقوق هم بر زن و بر مرد به شکل مساویانه داده شده پس زن هم حق داره که ایمان بیاره و داخل جنت شوه و مرد هم حق داره که ایمان بیاره و از ایمان خود استفاده بکنه و مستحق جنت شوه پس هر کدام از این حق دارن که ایمان داشته باشن حق دارن عقیده داشته باشن حق دارن به جنت برن یعنی تمام حقوقشان بدون در نزداشت مرد و زن اینال حقوق انسانی حقوق معنوی حقوق مثلا وطن پس ایناله هر کس حق داره منعید یک انسان به شکل عمومی که مرد باشه و زن باشه از وطن خود استفاده بکنه و این حقوق عمومی که بسیار حقوق از انسان ها بدون در نظر داشته جنسیت بدون در نظر داشته رنگ و پوس بدون در نظر داشته چیره و زبان کلگی حق داره حق کلگی است خب قسم دوم حقوق خاص است حقوق خاص کدام حقوق هستند یک سلسله از حقوق هستن که این حقوق به اساس مسئولیت‌ها داده میشه. انوال بر هر کس او حق به اندازی مسئولیتش داده میشه. اگر مسئولیتش زیاد است حقش زیاد است. اگر مسئولیتش کم است بنان حقش کم است. مثلا در این قسمت ما می‌بینیم که حق والدت پدر و مادر مادر مادر سه حق داره و پدر یک حق داره چرا مادر سه حق داره و پدر یک حق داره بخاطر از اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک صحابی برک آمد به فیه و رسول خدا کی مستحق تر است که من برازو زیاد نیکی بکنم کی حق داره پیغمبر صلی اللہ گفت که مادرت مرتبه دو باز پرسان کرد گفت بعد از مادرم باز کی گفت باز مادرت گفت بعد از او گفت باز هم مادرت و بعد از مادرم مرتبه چهارم گفت که پدره بناهن مادر سه حق داره و پدر یک حق داره اینال ایره پدر گفتن هم که چرا من یک حق دارم و خانمم سه حق داره سر اولاد بگه بخاطر خاطر این حق مادر زیادتر است چون مسئولیت مادر در مقابل اولادش زیادتر است مادر شب تا به صبح خامخو میشه بیدار میشینه و 24 سات از طفل خود مراقبت میکنه و احالات میشه که مثلا این این مادر بیچاره تا به صبح طفلش مریض است خواب نمیکنه هم برش غذا میده، هم برش دوا میتن با وجود ازی هم رویش هم میکنه مادر این مشکل داش میفتم چرا مادر باید سه حق داشته باشه پدر یک حق داشته باشه ولی وقتی که شب که طفلک مریض بود دیدم که مادرش هم برای از و من گوشای خدا ما گوش‌های خودمو کم گرفتیم و پدر میگه کوشش است که خانه خراب از من از خوابیدار کردی همیارزم کلکین بگین موسو پردمش. ولی والدیدم که مادرش دوام دوا بر براش غذا میتاه و آدمو حالتی که چشمایش هم از خواس بسیار و تکلیف سرش بذایین و طفل شوراك داده میره هر روز ما چش میگفت بران ما فاهمین که والله رسول خدا صلی الله علیه وسلم سلام حقیقتا عادلانه یپا گفته و یه حقش است چون مسئولیتش زیاد است تکلیفش زیاد است بنا برش چی داده شدن حق برش زیادتر داده شدن انوال به میشکل مثلا در حق میراث میراث چند قسم است یکی میراز است در کشورهای اروپایی یکی میراث است با سیستم قبیلوی در افغانستان و یکی میراز است که او را اسلام ترتیب و تنظیم کرده میراثی که در کشورهای اروپایی است او را حق داره یک پدر یا کسی فوت میکنه. که فوت میکنن که میراث خود حتی برای حیوانات ببخشه یا ورسه خود کاملاً از میراث محروم بکنن این میراث است کشور کشورها میراثی دیگه در بعضی از قبائل است که اصلا فریبکاری میکنن و بر زن و بر خواهر خود هیچ میراث نمیدن در وقت تقسیم میراث میر پیش خواهر خود برش یک خواهر که گل تو بسیار خوب، خواهر هستی و تو بسیار متدین هستی و با ایمان هستی. گفتم که میراث در کشورهای اروپایی کاملا بر یک کس حق میتکه. به اندازه‌ای که خواسته باشه، برای هر کسی که خواسته باشه، کول میراث وصیت بکنم. میراث در مناطق قبیله‌ای است که بسیاری کس ها حتی خود زن یا به میراث میبردن. یا برای زنهای هیچ میراست نمیدادن و یا از اونا چالهای رنگارنگ رنگ جور میکنن و میره پیش خوارک خود برش میگه که تو خوارک میربان مثل امیانم در افغانستان در بعضی جایی که قانون قبیلویست اسلامی نیست بر او میگه که تو مهربا هستی همین میراس و پیسه که براتو میرسن اگر میره ما بیادرها تقسیم کنیم تو خورنامه خدا خوب است و به چهاران مجبور میک خود سایست بیادرها با این شکل بیادراش حقش از پیشش میگیرن و برازویی چیز نمیتن میرس در اسلام که است در قسمت زن احیانا زن اضافه از مرد میگیره مثلا شما ببینید یک نفر فوت کرد دو دختر داره و شش برادر داره در این قسمت دو دختر ازید دوی برسه مال میگیرن و یکی برسه برای شش برادر تقسیم میشن چه اینجا میراث یاد گرفتن؟ شش برادر زیاد گرفت یاد دو خواهر دو خواهر دوی برسه در گرفتن یعنی اگر سی لک رو پیه باشه دو لکش خواهران میگیرن و یک لک باقی با شش برادر میگیرن دلش هب دزاری رسید چانده دزاری رسید، کار خودشان است اینالا در اینجا میراث زن نصف و مرد زیاد است حالت دیگهش ایش دومی است که میراث زن و مرد مساوی است قرار چه ریسه که به ابویه لكل واحد منهما است برای والدینشان اردویشان صد زاده باشد یعنی هم برای پدرش و هم برای مادرش ششم مثل مال داده میشه این هم یک حالت میداس هست خب ما کل حالات میراث را نمی‌خوایم منتها به طور مثال میگیم که در اینجا مرد زن مساوی هستند حالت سیومی زن کمتر از مرد میگیرند چی هست که وقتی که خواهر و برادر باشن خواهر یک چند میگیرن و برادر دو چند میگیرن و قسمت قسمت شوهرم چی است که زن هیچ میراث نمیگیره هیچ زن میراث نمیگیره چون ارتباطش با اون کس کم است هیچ مصاقی میراث نمیشه این آل اسلام غالباً اینی آلات بیان نمی کنن. تنها اینی آلات سیومی زیاتر زیادتر در راژیو ها و تلویزیون مطرح میکنن که چرا میراث برادر چرا چند خواهر خود میگیره؟ گیره یا اگر خواسته باشن کسی حق بفامن دین مقدس اسلام ما گفتیم که در حقوق خاص حق کی زیاده است؟ حق هر کسی که مسئولیت بیشتر دارد به در وقت وقتی که ما ببینیم خواهر و برادر در پامیل هستن وقتی که خواهر ازدواج کرد و برادر هم ازدواج کرد. سه لریپ از پدر شمانده بود دو لگر برادر شده دادن و یک لنگم خواهرش گرفت انار وقت که دو از ازدواج میکران برادرش چقدر مصرف داره چقدر مسئولیت داره مسئولیت مسار کاروسی خود داره مسئولیت نفقه خانمه خود داره مسئولیت مهر خانمه خود داره مسئولیت اگر مادرش یا خواهرای خودش مانده باشن مسئولیت اونارو دارن پس انار مسئولیت برادر زیاد شده از اینکه دل اگر به براش اش نمیمونه اما خواهرش وقتی که ازدواج میکنه وقتی که خواهرش ازدواج میکنه یک لک خوش بود اگر برش حق شده بده و اگر پدر و بیادرش باز هم خیانت کرده نام مهر تویانه بگیرن و باز تویانه در جیب خود اگر اگری جنایت برادر و پدر نکنن در وقت نکاح بر خانم یک لک یا دو لک افغانی مهر تین شدن و او را اجدارها نگیرند. برای خودش بتن اینال یک لک از میراث خود گرفت یک لک ها مهر خودا گرفت پس از این دو لک شد از برادرش مصرف شد و نفقیش هم سر از این فرض نیست دیگه نفقیش سر شوهرش فرض است اینال در اینجا نه تنها حقش مراعات شده بلکه از حقش زیاد هم داده شده چرا؟ مسئولیت خواهر کم است و مسئولیت برادر زیاد است از این خاطری میراست است اینال کسی که دیر مقدس اسلام نمی فهمن و یا نمی که بفهمن و یا می که یک را بر خود پیدا بکنن و از دیگه کل حالات میراست دیر میشه شه می اینجا باز گپ می که والا به میراست این تو مشکل است خب در هر حکم اسلام هر کس مرد باشه یا زن باشه در حقوق خاص به اساس مسئولیت شد مسئولیتت زیاد بود حق تام زیاد است مسئولیتت کم بود حق تام کم است وقتی که پدر مثلا خودت یک هزار اپارین میتن میگه بچه میینه یک هزار اپارین رو بگی بر اونو امسایه که لیا فتوشک فلانی نه بودوزه و با برادر ده هزار افغانی میتونم میگه بچه میده ده هزار افغانی تو بگه برو از بازار یک برژی آرد بیار یک برژی روغن بیار حال تو که خوار بگه برای بیادرم چرا ده هزار دادی؟ برای من یک هزار دادی؟ مسئولیت تو کم از تو کار رو که هزار افغانی ضرورت دارن؟ و ما او پش سودو مینه سودای مینه که او ده هزار افغانی ضرورت داره پس اینال نمیشه که ما به نام حقوق مسئولیت ها را در نظر نگیریم در قسمت تکالیف در قسمت تکالیف اینال بسیاری کسا فرق بین حق و بین تکلیف تکلیف را وقتی که بحث میکنن تکلیف هم داخل میکنه در حق انال ما در تکالیف چی داریم؟ تکالیف عمومی داریم و تکالیف خصوصی داریم تکلیف چیزیست که انسان بر الاج... حق نیست بلکه او سرش یک مسئولیت است، یک بار است یک حکم است که او را باید خود تطبیق بکنن مثلا نماز خواندن همین عبادات در اسلام میگن تکالیف هست مثلا نماز خواندن چی است؟ تکلیف هست او کسی که نماز نمی کنه گنده تا هفت وجه خب است. که از خب ها میخیزه بوی میتو اون دو آواره چرا که خدا جنگیست گب خدا نزد صبح خدا گفته بود که پیش از طوری آفتاب بخیز اول بیا کتمه اوزو بگو، اول خوب خدا پاک سفا بگو، دندارک هایت برس یا مزواق بکن لباس هایت خوب سفاست چیز که اوزو بکن اول کس هستم باید کتمه ملاقات بکنی چون من دوست نزدیک تو هستم خب انال نماز خواندن خودش که انسان در مازمستان میخیزه تو بکی اوگرم باشه که تویخ اوزو میکنه یا یا مثلا انسان زکات می ترس پیسی خود پی میگیره می, می یا انسان به حج میره سفر پایان بالا برو پاسپورت بگی و ویزه بگی کلش تکلیف است. بس انال تکالیف و حقوق نیست. این مسئولیت هاست تکلیف هاست. انال در تکلیف ها هم خداوند متعال جل جلوه جل هم تکلیف های عمومی سر زن و مرد یکسان فرض است واجب است سنت است مستحب است. مثلا نماز اگر پنج وقت فرض است بدون فصد مساویانه سر زن و مرد فرض است زن هم باید پنج وقت نماز و مرد هم باید پنج وقت نماز بخونه نماز صبح دو رکعت فرض است بدان سر زن هم دو رکعت فرض است سر مرد هم دو رکعت فرض است نماز پیشین چهار رکعت فرض است سر زن هم فرض است سر مرد هم فرض است ده روزه ماهی مبارک رمضان روزه فرض است کتیب علیکم و سیام من کتیبه نوشته شده علیکم بالای شما اینجا بعضی ها می... نمیشه که اگه نفر بخیصه بگه وارا علیکم خ... بر مرد هاست خیلی خي... علیکم نه نگفته ما زنها ایچ روزه نمیگیرین ایج تابال در تاریخ آتوکست نشده که بگه که ولی چون وقتی که حکم آن بود خداون اطلاق کرد میگه علیکم بالای تمام شما مسلمان ها. بناهن هر کسی که مسلمان از است یا مرد سرش ماهی مبارک رمضان فرض است. و هیچ کسی نمیگه که بالا سرما فرض نیست. آیا ماهی مبارک رمضان روزه نه فرض است یا فرق است بین فرضیتش؟ مساویان هست تو گفتنن نشده که مردها خاطر که مشکل دارن پانزه روز روزه بگیرن و زنها دو ماه بگیرن اگر از تو میگم باز با بیفتیم نه ولی اینجا اینجا اگه تکلیف هم است گفته که چون مسلمان هستی چون جنت میری چون مسئولیت داری بنا انسر تو هم مسئولیت سیاتر هست بمیشکل نماز روزه زکات اگر مرد مالکی نصاب شد سرش زکات فرض است و اگر زن مالکی نصاب شد سرش زکات فرض است اینال هیچ کس گفتن نمیتونه که مثلا من خاطر از اینکه شیستم نیست سرم فرض نیست مرد باشه یا زن باشه زکات سرش فرض است هر، هر کدامی که توانایی پیدا کردم بلاخر سر از اینا احکام ترس شده میده بنامه تکالیف عمومی را که ما در اسلام حساب میکنیم به شکل مساویانه اگر حق عمومی بود مساوی بود حق خصوصی بخاطر مسئولیت ها فرق میکند. تکلیف عمومی اگر مکلفیات هم از تکلیف هم دارن سر مساویانه تقسیم شدن بناهن در تکالیف عمومی مساویان هم مردو زن بدون در نظر داشت جنسیت سرشان مساویان هم است. تکالیف خصوصی خاص تکالیف داریم خاص تکالیف داریم که ای تکالیف ای تکالیف هم به اندازه صلاحیت هاست صلاحیت یعنی توانایی ها اینال او جه که چون کل اگه میتونه نماز بخوانه کل میتونه که روزه بگیره توانش هم مرد داره به زند داره سر کل فرض شده اما در جاهای دیگه هست که مکلفیت های خاص است. این تکلیف احیارن برای یکی داده شده برای جارب مقابل داده نشده چرا؟ گفته حالا به خاطر ازی داده نشده که این تکلیفی از این توانایی فلانی کس داره، فلانی کس نداره مثلا در موضوع رزا. در رزا یعنی دادن تفل در مسائل مخصوص زنها، حیز، نفاس مسائل که مربوط به خانمها میشن اینجا تکلیف زنها بیشتر است نسبت به تکلیف مردها یعنی اگر شهادت باید در این قسمتها شهادت کی رو بشنویم از زن یا از مردن از, زنه. از, زنه. از زنه. چرا؟ که زن چرا به خاطر اینکه زن توانایی بیشتر در این قسمت داره این مسئله زیاتر می‌فهمه مرد نمی‌فهمه از این خاطر در این قسمتها مشوره میشه به امرای زنها و شهادت از اون‌ها خواسته میشه ولی مرد نمی‌فهمه اونه می تو قرار بیشی تو اینجا شهادت ندی بخاطر از اینکه تو در این مسئله نمی فهمی. حضرت عمر را دلتالان میخواست می در باری رخصتی کسان که مثلا در سرحداد دفاع می کردن از عراضی مسلمان ها این قانون می زاخت. یک اسکر یک مجاهد در جبهه چقدر وقت باشه و خانمش چقدر وقت تحمل کرده آمد از پیش بیبی بی حفظه که هم دخترش بود و او هم همسر رسول الله صلی الله علیه برازو گفت که بچه تو هم دخترم هستی و هم مادرم هستی حفصه دختر حضرت عمر بود و هم گفت مادر ماست چرا که از واج پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام مادر ما و بنست قرآن بنس و از واجهه و مهاتكم زوجات پیغمبر مادرهای شماست بنا بعد از فوت پیغمبر کس نمیدانست که از واج پیغمبر ازدواج بکنه چرا که نکاگه مادر نمیشه دیگه و خداوند گفته که خانم های پیغمبر سلام مادر های مؤمن ها هستند و از وجهو امه ها هم آیت قرآن است. اینا را ازتومر برازو گفت که تو هم مادر هم و هم خواهر هم یک زن وقتی که شوهرش از خانه میره چقدر وقت این تحمل کرده میتونه فراق شوهر خوده؟ او دست خدا برش بلند کرد و گفت که چار ماه بناان حضرت عمر به احساس گفتی های حضرت حفصه فرمان صادر کرد که هر مجاهد و هر عسکری که در جبهات هستند در سرحدات هستند بعد از 4 ماه باید برازنا رخصت داده شود بین خانه خود یک و و هفته سفری بکنن باز پس برن با وظیفه یعنی وظیفشون باید دامدار شش ماه و هفت ماه و هش ماه نباشن چرا حضرت عمر رفت پیشه بی بی به خاطر از این که اون موضوع رو نمی فامیدن اون ها, ها بران رفت از یک زن مشوره گرفت اناله در تکالیف که صلاحیت بیشتر است تکلیف بیشتر است توانای بیشتر است تکلیف بیشتر است در مسائل که مربوط قتل است شهادت در قتل شهادت در زنا شهادت در جنایت های خطرنات. خب اینجا کی توانایی به شر داره که مثلا دو جا یک کس کشتن افتاده آیا دخترها جرات میگن برن سل کنن اون مرده او کشته کشتش شدگیره شاید گرده شام کشیده باشن یا سرشام پرنده باشن واروی اپاد گرفته زود تیر میشن ولی بچه مردم ها میره میکنن اگر یک جای زنا میشن آیا زن میره میکنن هیا و شرمی ازی تخاظه ازره میکنن که چادر خود روی خود گرفته از امراک زود تیه خداوند متعال جلجالوهو حکم کرده که در مسئله شهادت در زنا و قتل زن مجبور نسازین که تو بیا شهادت بدی از رفتن در محکمه ساران سارانوالی پیش پلیس رفتن اقرار کردن و اونجا و اونجا قاتل هم است که خود تو شهادت من را دادی من کار دارم اینان از اینجا این تکلیف است یا تکلیف است و یا حق چیست؟ <تصفيق> تکلیف است پس اینا در اینجا کی میتونه توانایی بیشتر داره مردها بنا اینجا گفته که باید مردها شهادت بدن در قتل و زنا و زنها را از شهادت دادن در قتل و در زنا عفا کنین هیچ پرسان هم نکردین چرا اگر بری پرسان بگوری یک یکی یک او مجبور است که باید بره اون مرده را سیل کنه او قتل را سل کنه و باز به شهادت بدن بلانیره محکمه بردن، پیش سوال بردن، پیش پلیس بردن، اونجا جنجال، مقال اه؟ قاتل ها؟ قاتل اومجده مقابلش ساده است. اینال کلی این مشکلات که هست، اینجا گفته که چون مسئولیت مردها است، باید اینجا مردها چاره‌دل دهن. در ازا و حیض و نفاس و مسئول ها اینجا مسائل خانواهه باید زن چاره‌دل ده. در بعضی مسائلی است که مردها بیشتر سر و کار دارند، وزن‌ها مسئولیتشون بسیار کم است. مثلا مسائل تجارتی و خرید و فروش و بازار این کارها در اینجا مگه مردها اکثرا در تجارت نقش زیاد دارن زیادتر مردها تجارت میکنن زیادتر مردها در این مسائل دستی دارن وزنها بسیار کم است یعنی در بین ست زن اگر 5 تا زن تجار پیدا کنی اما در بین ست مرد پینجا پیسدش مردها تجارت و دوکانداری و مسائل خرید و فروش شکار رو میکنن اینال جا اینجا گفتد چون مردها بیشتر هستند و زنها داری مسائل تجارتی دست کم دارن اگر شهادت میتن در سر یک مسئله پولی دو زن باید شهادت بتن دو زن چرا؟ اگر یکیش میگه فراموش کنه او دیکیش به یادش بده ولی اون که جنگ بود و داوا بود و قرض بود و زدنک بود و خال مقال بود و بلاخره نشت کردن ها چیز ایش که میگه بود و گشت میگه نه ولی اون یادت نرفت بازون اون نفر ما تو قده ولی یادتون نرفت بخیر میادت رفت و اون باز اون نفر گفنه چار نیم لک بازون باز نیم لک بازون لک اون مگه بلا عزی خاطر دایات شریفه است که باز چون در اینجا مسئله است که زیادتر زن کمتر در اینجا نقش دارن از این خاطر دو زن شهادت بدن اینجا اگر شهادت می دو زن باید شهادت بدن تا یکیش برادگیش این موضوع را بیان بکنه بناله در اینجا این تکالیف است بناهم در هر تکلیف در هر تکلیف مطابق با صلاحیت نماز جماعت نماز جماعت خود نماز خواندن فرض است مساویانه رفتن به مسجد و ادای جماعت ای هم یک تکلیف است وقتی که از خانه وضو می کنی میری تا مسجد خونه کامه است باید یک ها رو میخ میزنه، زنن مجبور چرا بریم؟ چون میگه پیغمبست هم گفته که اگر کدام مرد طالق جماعت هست جماعت سنت من هست و مخالفت سنت نمی کنم مگر منافق و خصوصا در نماز خفتن و صبح پرسا که پیغمبران میگن فلانی فلانی کجا هستن گفت تشریف ناوردن. گفت نماز جماعت خفتن و نماز جماعت صبح سر منافقا بسیار سخت میباشه اگر بگه وقت هم با جماعت به جماعت بن دو وقثرشون بسیار سختی میکنن، چون خفتنکی سریال است و فیلم است و نان ماندگی است و چای دمکرگی است یگان glass چی راست یگان داره میوه میگپا است از این خاطر انسان های منافق با دیدن خوردنی ها و دیدن وندوها و بغوان و بت خدایاتش میمیرن باعث یادش میرن اینالی تکلیف است یا نیست رفتن و جماعت یک نوع تکلیف است گفته اگر زن ها و خواهرایتان و دخترهایتان میرن به جماعت نماز جماعت میخوان مرد حق نداره که مانی از او حدیث شریف بیغم بسید سلم هست برن و سواب خودت بگیرن اما اگر در خانه میخوانن برشان بهترتر است که در خانه بخورن. چرا؟ به خاطر از این که مثلا وقتی که یک خانم تفل داره. دیگهش بار است اگر سر از او نماز خفتن واجب باشه ای که میرسه به نماز خفتن تا که پس می که او تفلک خانه خود چ که خانه, خانه همسایر هم در سربر داشته چیخ زده. انال به خاطر که تفلک از چیزشه و مع که خلاص تو از رفتن به جماعت اگر نری منافق نیستی. اگر نری به جماعت تو منافق گفتن نمیشی و در خانه به خانه بهتر از بخون. اما اگر تو مرد نری، بن نماز جماعت تو باز در, در خانه نماز بکنید تو باز در لیست منافقینی هستی چون تو منافق هستی وقتی که یک نفر مثلا بر تو میگه که والا استاد مطر بسیار دوستدار دارم بسیار خوب هستی فلانی هستی باز ما والا خیر ببینی روزید رفتی صاحب مکرویان از مکرویان رفتی خوشحال خام مینه از خوشحال خام مینه رفی قلای بختیار از قلای بختیار رفتی کوتی سنگی از اونجا رفی از اونجا رفی میتره اون و خانیم این وسط بود تابال دروازه ایم هم من فهمی که آبیستی آسیا پس دوستی تو دروغ است منافق هستی فلیب می‌کنی؟ میکنی در یک چیز هست وقل. اگر تو دوستی می‌داشی، خود رو خانه فلانی فلانی دفتی اینال عین شکل وقتی که تو خانه فلانی میری خانه بچه کاکایت میری خانه بچه مامایت میری و ماهاس طرف مزید نمیری و نماز نمی‌خونی. پس مشکلتی هست دروازه خانه خدا رو نمیشه. نمیشنست بنامه یکی ای که طبق جماعت میکنه ایچی هسته در لسطه منافقین گرفته میشه انال اینجا مثلا جهاد جهاد دفاع از وطن دفاع از کلمه خود دفاع از ناموس خود این یک فرض است که بالای مردها فرض هست اگر زنها احیانا اشراق میگن من ایس دکتر من ایس نرس اما در جبهه مصالحانه جنگیدن بر زیر دشمن دشمنا این مکلفیت است تکلیف است کدام خوبی تکلیف است زامت داره اونجا میری لب میخوری اونجا میری از کولول میخوری احیانا پشت دشمن مثلا سرت فایر میکنه بهم میپرته اینجا میگه که در این قسمت جهاد سر زن ها چون تکلیفش زیادتر است مثلا ازیا فرض نیست اگر جهاد نکنن هم برای زیاد مشکل ایجاد نمیشه. بنا انخلاصه گفعی میشه که در تکالیف عمومی کلگی مساویانه بدون در نظر داشت مرد و زن تکلیف فرض و واجب و سنت و مسترپ در کلگی در تکالیف خاص به اساس توانایی ها و سلاحیت هاست میعنیم در امتیازات در امتیازات اینال یکی امتیاز عمومی است امتیاز انسان بودن بنا انسان من از یک انسان امتیاز داره که او کرامت داره نسبت به سایر حیوانات خداوند ایره کرامت داده پس کرامت انسانی برتر است امتیازش زیادتر است نسبت به یک حیوان مثلا در یک جای در جای بند مانده یک انسان بند مانده یک گاو بندمونه ها اگر گوان جاید بتیم انسان میره در چکوری تکت تکه میشه و اگر جا... انسان جاید بتیم گو میره اینال کرامت کدامش داره انسان داره از این خاطر باید حیوانات در خدمت انسان ها باشه یا انسان ها در خدمت حیوانات باشه اما برعکس افیسوری جاید انسان هاستن میرن تشنابک های سگار را پاک میکنن از نیست پس این کرامت پیدا کرد یا کرامتش از بین درد امتیاز داستشو از بین درد امتیازش ایواز که گوشت گاو بخورن اون دو گوشت خودم میخورن خودش تار واره گشته گوه چاک چاک در این سرک میگردن چاق چاق. ایناله گوه نمیخورن می چرا؟ میگو والا او چیسته؟ مقدس است و پاک است و اینال, اینال اینجه اینجه کرامت کی پیدا کرد؟ امتیاز کی پیدا کرد؟ حیوان پیدا کرد پس خداوند میگه شما باید ازی هیواناتون تو کرامت داری اینها در خدمت توست از گوشت حیوانات حلال استفاده کو و شکر خداوند مطال جلدی علوه رو بکن ابر و باد و ماه و خورشید و فلک درکارن یعنی کارگر از کلش مزور توست تا تنانه به کفاری و به غفلت نخوری همه از بحرتو سرگشته و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبرید کلیه غلام توست این امتیاز تو است بنا امتیاز انسان عموما تمام انسان ها از حیوانات و دیگر چیزا امتیاز دارن و لقد کرمنا ما کرامت زیاد داریم یا جن ها انسان کرامت زیاد دارن جن هم یک مخلوق است لکن خداوند انسان کرامت داد پس این کرامت مرد باشه یا زن باشه دوم کرامت کرامت اخلاقی امتیاز اخلاقی کلگی داروی یک امتیاز است که اوج باید اخلاق از او و اخلاق با همراهی او و گفتار با همراه از او باید به با شکل مثبت باشه چون او انسان با کرامت است کل بنی آدم است هر بنی آدم چی هست کل مسلم علی مسلم حرام حرامان او و ماله و عرضهم خونش کرامت داره نباید به مالش کرامت داره نباید منفی تصرف بکنی و آبروش کرامت داره نباید او را بزنی تا وقتی که کرامت خودا حفظ کرده اما بعضی حالات هست که انسان باز کرامت خودا بده دست خود از دست میده قاتل چون خون کس نگره ایختانه پس خون ازی هم کرامتش از بینه باید خود رو جمع قابلش شود. کرامت کرامتهای خاص که از که او را خداوند اول برای کی داده خاص این کرامتها رو برای انسان ایمان داده بنان. کرامته که انسان مؤمن پیش خداوند متعال داره یک انسان بیدیر و کافر نداره امتیازی که او داره بازو نداره جنت امتیاز است برای کی داده میشه؟ برای انسانی که با ایمان است پس این امتیاز واسه امتیاز مثلا یک عالمی که داره هر یستر الذین یعلمون والذین لا یعلمون بنا این کرامته که یک نفر عالم داره کرامتی که اگه انسان با تقوا داره انسان بی‌تقوا پیش خداون یک شأن زاپولی ارزش نداره یک شأن در کل کنه فروشی یک شأن زاپولی قیمت نداره چون تقوا نداره اما انسان با تقوا ارزش بسیار زیاد بهش خداوند داره امتیاز داره انسان که اخلاص داره کل کارش به خاطر خداست این صلواتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین نمازش عبادتش، ثاعتش، حتی وقتی که برای کس غذا پخته میکنه با اخلاص پخته میکنه اما انسانای گمرو اگر دید که هستی، غذای لکس برات میاره اگر دید که camera که فقیر هستی نمیگه گمرو برات شک کچالو رو جوش بده قسم خدا مقصد بخوره اما انسان هیچ اخلاص از انسان که اخلاص داره همیشه با اخلاص است از این خاطر این امتیازات به این ای اساس داده میشه فهمیدین ان شاء الله بود درس